ما شیعه هستیم. ما ها زین عیمه علیه هستیم. ما ها کسایی هستیم که سنگ امامت و پیروی از علی اولاد علی رو به سینه میزنیم. ما اگر شما تطویشیم خب دیگه خیلی زش میشه. میگن هر بگندت به گندت میزنن. خواهی به روزی که بیگندت نمک ما هم میگیم شیعه آخر زمانی هستیم شیعه امیرالمومنین علیه السلام امام حسین علیه السلام و پیرو امام زمان علیه السلام هستیم اما از آن بر مخالفت عمرشونو میکنیم مخالفت فرمان میکنیم موجب نوزو بالله شماتت دشمن نسبت به اونها میشیم حالا اگر مثلا دشمنان ها در مقابلشون قرار بگیرن و مثلا یه پوزخندی بزنن ما باید چیکو کنیم واقعا؟ اونها در مقابل عدم پیروی ما بخوان موردش شمازه دشمنانشون قرار بگیرن ما باید از خجالت چه بکنیم؟ یه داستانی رو بگم خدمتتون؟ اماموزا علیه و السلام وقتی به اجبار خلیفی عباسی مأمون به مرب اومدن به خراسان کلونی اومدن و از مدینه بازور فشار ایشون رو اووردن به خراسان، خب ایشون دیگه مجبور شد ولایت احدی رو قبول کنه ولی عهد مثلا خلیفه بشه به ظاهر. خب یه ادهی به جهت اینکه که دوستار حضرت بودند شیعان حضرت بودن موالیان عیم علیه بودند سلام بودن می اومدن خدمت ایشون و کاری داشتن ای بود مطرح میکردن یه جمعی اومدن در به منزل حضرت اون خازن و خادم حضرت اومد دمی در اینجا هم گفتن که ما از شیعیان علی ابن ابی طالبیم و از دوستداران آقا هستیم میخوایم خدمتشون برسیم خادم اومد خبر داد که این چنینه میگن ما از شیعیان علی ابن ابی طالبیم حضرت کف بگو من کار دارم بدن بردن بیام رفتن فردان اومدن مسافر بودن مجدد حضرت فرمودن که کار دارم و بیرون بعدن بیام بار سه بوم که اومدن حضرت پرمودم بگید بیرن دو ماه دیگه بیام دو سال دیگه بیام مثلا اینا رفتن رفتن دو ماه دیگه اومدن مجدد گفتن که ما از شیعان علی ابن عوی طالبیم به دوستانان حضرتیم و شما رو دوست میداریم کاری داریم با تو جمعی بوده. حضرت پاسخ گفتن که من کار دادم. خادم حضرت عرض کردن اینا دتی میرن میان چرا اجازه نمیدن؟ حضرت فرمودن که اینها میگن ما شیعه علی ابن ابی ما گفت حضرت میگی شما چرا میگی شیعه؟ گفتن ما محبیم. حضرت راه دادن اومدن داخل. عرضه داشتن که آقا ما دوستار شما هستیم و خیلی خواهان رویت شما بودیم و هستیم چرا ما رو رد میکردی؟ حضرت فرمول شیعه علی ابن ابی طالب سلمان بود ابوذر و مقداد بود میسم تمار بود اینها شیعان همیر بودن که همین که متوجه می شدن حضرت کاری رو خواهانه بدون اینکه بگه اونها انجام میدادن چه برسه به اینکه دستور بدن شما اهل معصیت هستید شما اهل برداری نیستید چطور میگی شیعه گفتن ما توبه میکنیم درگاه خدا و به شما قول میدیم و به خدای متعال قول میدیم که دیگه اهل مثلا معصیت نباشیم اهل پیروی از شما و آقای گرامیتون باشیم حضرت فرمود کسانی که محب ما هستند نشیعه ما محب ما هستند و اهل گناهان موجب شماتت ما میشن موجب میشن دشمنان ما ما را شماتت کنند علاوه بر این نکته که ما خدای نکرده نعوذ بالله گاهی مرتکب خطا و گناه میشیم فقط به خودمون جفا نکردیم ما یک گروهی هستیم معروف به شیعی علی ابن عوی طالب صاحبون علی و عبنای گرام میشون به امامت امام عصر مهدی آل محمد صحبات الله رحم عجباین دوستار ایشون هستیم و خواهان ایشون هستیم وقتی مخالفت فرمان میکنیم مخالفت فرمان خدا رو میکنیم که اینها فرمایش کردن در واقع مورد شوماتت دشمن قرار می گیدیم. هم خودمون هم این بزرگوارا